والله و شده و های این اللهم هر شد که برای که شد رو به اون که ببینیم تا حدیث ظاهران خوندیم تکمیل بحث. حدیث شمال شسته از این کتاب جامعه الاحادیس جلد بیست جامعه الاحادیس که در کتاب الاشر رو اوورده ایشون در اونجا از کنه در جامعه الاحادیس کتاب الاشر مستقلن اوورده قبل از مکاسه در وسائل در زیر کتاب حج تو دوباره حج کتاب الاشر زکن این آن خواستن این دوزا باید مراجعه بشه حدیثی شمایه شهست در کتاب امالی شیخ صدو حدیثنا احمد بن هارون از مشایخ مجهور مرحوم شیخ صدو حدیثنا محمد ابن عبدالله ایشون از اجلای اصحاب پسر همیری خودش خودشم هم همیریه محمد ابن عبدالله همیری که استاد مرحوم کلینیه کل علیخی بجا ده محمد بن عبدالله در اول سند مرادش ایشانه عبدالله هم همیاری پدر که معروف عبدالله و محمد پسر از مشایخ بسیار بزرگوار هست انا ابیه عبدالله بن جعفر پس کردیم یکی توبیات همیاری خیلی معروف این توبیات مال پسرین یکی هم قربله اسناد همیاری معروف اون قربله اسناد مال پدره ای. این دو تا رو به انگیه اجتهاد آوردن انا عبدالله ابن جعفر ان احمد ابن محمد برقی بعد خب چون احمد برقی لقوم بوده همین طبقه هم هست بیخوره که انا حارون ابن جعف از یادم میاد علاقه حافظم قرار ناشده باشن اون سابق هم قبل تطریع از کردیم به نظر ما خیلی بعیده احمد برقی از حارون جعف نعبو کنیم خیلی مشکلی و معیدش هم نشالله خواهد آمد در در این در باب 120 در این کتاب جامع الاحاديث که دست من هست صفحه 539 باب 120 از همین کتاب ال اشره هستی باب انده کفاره الاختیار اینجا اینطور داره کافی ان ادعا في من, من فکر میکنم تو این ادعای کافی شاید حالا اون ادعای احمد اشعری هست این ادعای شاید ندوشه به نظر محمد نه عبدالله توی که از این ادعاها هست الان تو ذهن من دقیقا نیست اگر خودم دارم نگاه بکنن ادعای مرحوم کلینی از احمد برقی همون نظرم تو ادعای احمد اشعری محمد بن عبدالله هست همیاری پسر ولی تو ذهن من اینطوره بله احمد بن ابي عبد الله اینجا کلمه انا ابي اومده در به نظر من هم اینجا هم همینطور همین درست باشه تو اون یه مطلب است بعد اون تازه داره انا حفص بن آمن اگر این باشه معلوم میشه در نسخه ای که مرحوم صدوق داشته خیلی خراب شده هم اورنجہ انصاد علیسا مستحکم نیستم مرضی از اون اون بهتر میخوره حالا این اون روایت بهتر میخوره به اصل مطلب انا ابیه انا ہارونجہ واخر اگر فرض مثلا به این که همین طور باشی یه صدورده احتمال داره به طور طبیعی من نمی‌خوام رو این حدیث الان بحث بکنم چون خیلی الان حدیث اینکه بخواهوش خیلی کار بکنیم لاکن احتمال اینطوره یا برگرده به استاد صدوق مرحوم این آیه احمد بن هارون رضی الله یا نسخه ایشان خرابی داشته یا احتمال داره برگرده به مرحوم برقی چون برقی به هر حال کتابش خرابی داشته مقدار خود کتاب غیر از خود برقی که متساهل در حدیثه چون هم نجاشی هم مرحوم شیخ توصی در باب وست وصف محاسن گفتن زید و نقص نسخ کتاب برقی کنازیات داشته احتمالاً یا به برقی برگرده یا به خود اون احمد ابن حارون که نسخه این خرابی داره این شاید بهتر باشه هم قبل از حارون جهم یکی هست اینجا افتاده هم بعد از حارون جهم یکی هست افتاده هفت ابن عمر هنه عبی عبدالله علیه سلام. برمارد. اما اصل مطلبش اداجاه و الفاسق و به فسره فلا حرمت له و لاغیبه و لاغیبه. اینشانده در بحث فرخیش خواهد آمد که مطلبش بد نیست در سند حدیث مداری خالی عزشکار نیست. حدیث شماره سی و که سندی محمد این قربل اسناده اینجا را اسم بردیم. قربل مال مان محبوم همیری پدرم. انس بن یزب محمد، انس عبدالبخاری، کردیم عبدالبخاری فوق العاده ضعیفه. لیکن خب یه مقدار روایاتی رو که نقل میکنه از طرق دیگه هم آمده این همونی است که الان تو بحث اصول متعرض شدیم. میگفتن مثلا این حدیث یه لا مجعول نیست، موضوع نیست. چون از طرق دیگه آمده، اهل سنیا مثلا این دارن، این متن سلسله دارن. در خود اون درس هم داشت. از طرف دیگه هم مثل سندی ابن محمد او رو نقل کرده سندی ابن محمد عبان ابن محمد بجلیست از بزرگان و علماست که حالا معروبالی اهل کوفه هم هست فکر میکنم کوفی باشیر که معلوم میشه مرموم مهمیری که به سفری که به اراق کرده این حدیث رو از کتاب اول بختری رو از نقل کرده قال صلاحاتون ليس سلاح هم حرمه مضافر بیم که احتمالا مرموم مهمیری از باب تصنیف مصنف این حدیث آورده نه از باب اعتبار چرا چون کتاب ایشون قبول اسناده دو این بوده سند کم پیدا بکنه ولو به اسناد یعنی در این کتابش این اوورده معلوم نیست که ارزشش قبول کردن باشه احادیسی است که قرب اسناد داره برهام ارز کردیم شواهد نشون بده مرهوم همیری حدود سالهای 2978 وفات ایشانه 297 تقریبا اون وقت ایشان تا امام ساده که 148ه بنابراین معروف که ارز نزدیک 150 سال فاصله است آداتا 150 سال رو ارز در حدیث با پنج طبقه میرن خب با چه چهار طبقه سی سال رو یک طبقه بگیرین ساد و پنجا تخصیم بسی بشه پنج طبقه پنج طبقه حساب میکنن وقت مرحوم نهمیری با دو واسطه از امام ساده سندیر محمد و نبیل بخته اگر این حدیث میاد میگیم مثل عبالبخته بود. این ترجمه در نظار میگرد ما تجدیل شنه جناب آقای همگیری رو گفتیم که فوق الازجی و قرد و عرضی موشه انده این از خوابینا تحجیب نکنیم که اینا چرا مثلا با این جلالت قرد از یک فردی مثل عبالبختری و ابن حدیث نارده کردن هم سرم وضع این کتاب به عنوان به اصطلاح در سابق بینامتا مصنفات اصطلاحشون این بود ما میگیم مثلا کتاب های سری اسا کتاب هایی که توش لفظ یک بود یا دو بود یا سه بود یا روایاتی که توش کتاب هایی که توش روایاتی باشه که مشتمل بر علت باشه لاءنده باشه فعنده باشه اینا رو گفتن مصنفات طبیعت مصنفات این بود که مراقبت صحد سند نمی کردن طبیعتش این بود دیگه مهم اون عدد بود هر روایتی که توش لفظ 3 هست اینا جمع سرد صحیح باشه نباشه این به بر... کتاب قربول اسناد ایشون هم جزء مصنفاته یعنی به اصطلاح هدفش این بوده روایت روی بیانه که قربه اصناد داره خب قربه اصناد نمیداره دیگه به فرنسا قربه اصناد دیگه بین ایشان وفات ایشان با وفات امام صادر سرامون داره 150 ساله سال 49 سال یا 150 ساله و معزالک با دو واسطه از امام نمی کنه خب قطعا قربه اصناد قربه اصناد جمعی سردیت حدیث رو دمید یک کتاب اعتبارش بالکر از کتاب نه ثقیضا تصادفاً تصادفاً در بحث تعارض این بحث دارن که اگر روایت قرب تعارض شده تا که قرب یکی اولو اسناد داشته که بعد اسناد. ایده اینکه ما بعد اسناد مقدم باشه نه اولو اسناد. میگن چون اولو اسناد توش کذب وینه میاد دروغ میاد. نه اینجا انگیزش فقط این بود که عرض کردم اینا مثلا خود اهمیت ایشان مثلا کوچک بوده. پدریش هم میتونه شدیم پدریش هم جزو باشه مورد مجلسی پیر مرگی مثلا سندهی بن محمد یا مثلا جوان بوده از سندهی بن محمد اجازه گرفته نه در سنی نه 85 سالگی نه 20 سالگی نه نه بشته این سر این که این فاصل زمانی کم میشه اینه با این خیلی مهم فاصل زمانی این کم بشه سرش اینه به اعتبار کتاب بیشتر نه دنبال اعتبار نبوده اعتبار به این معنا نبود میو چون زمین تو مسئله حجیت و اعتبار. یک مقدارش ناظر به حفظ میراث بود مثل مرحوم شیخ طوسی صد دلیلش هم واضحه چون شیخ صدو در کتاب حمادی یا در کتاب خصال یا ادله شرایط روایت آورده باب احکام اینا رو تو فقيه نیاورده مؤلف هم یکی خب او سوم چیزی کتاب به کتاب خصال بیاره تو کتاب ادله شرایط داره همین لواضی که معروفه که آیه خیلی این گفتن فتو میزنه که جمعه بین فاطمیت نشه در نداله که فاطمه پیوشق و علیها. ها خب اینو توی علا شراعه توی فقیه نه بوده این بوده صرفش اینه توی کتاب های مصنفات دنبال اعتبار نبوده. خود صدور هم تصدیل میکنه میگه و جمعی و در فقیه اول فقیه مصنفر در کتاب المشهور علیه, علیه المعود و علیه المرجه بعد میگه مثل کتاب خلاه لاریز دارد که بنظر اصول المصنفات و کان قصيفي فيه قصد و لم يكن قصيفي دست المصنف مصنفين في جمعی جميع یا ربو هدفم این نبود که مثل مصنفات باشه که هر چی که در باب فقه آمده اینجا بیادن بل ان ما اوردت في ما كان حجه ديني این دو رو با هم اون اعتبار این حجه این دو رو با هم فرق نمی یه في حفظ میراث مراد بود این شد مصنفات یه که حجه مراد بود شد کتاب تاریخ شیعه صدوق حدسابه است پس این کتاب شکال نشه ایشون البته اگر قربول اسناد دائم مراجعه بکنه حالا من نمیدونم آیا همه کتاب عبدل بخت چند صفحه است انس دین محمد ان بن بختری همین کتاب عبدل بختری به طریق سندی محمد اسم ایشون ابان بن محمده بسیار عمل جلب حدیث شماره۶2 ق به آوندی البته این رووارد اهل سنت هم دارد به استرا خودشون و معات داره شواهد داره. سلامتوننده لح هم حرممه صاح با هوا مبتد و اعام جار و فاص غ المن به فصل. این در کوب اهل سنت هم هست. من جور همین حدیث شماره از دو. خطور را وردید فیلوب لبا و عهد نبی از مسادر احرسان قال لا حیبت لسراسه سلطان جائل و فاسق مؤلم و صاحب بدعه لکه تا اینجا اسالی این حدیث پیش ما روشن نیست صاحب بدعه و سلطان جائل و فاسق مؤلم فاسق مؤلم چاید سلطان جائل هم که خوب ازیز نمیدتر اما صاحب بدعه مثلا بگیم که اطلاق داشته باشه که قیمتش جایزه در غیر از اون جهت بدعتش این الان روشن نیست و باز در مستدرک از سیر فضل الله راوردی این آیون مقابل شد نیست این چاپ به نظر نوادر راوردی چاپ شده این چاپ که من دارم از مستدرک نمکتن به نظر بعدها خود نواده چاپ شده به ذهن من اینطوره به اسنادی از محمد ابن اشعز بلا؟ چاپ کرده؟ وقتی میبینم چاپ کرده. ایشون هم به واسه رحم می‌کنه. حالا اگه چاپ شده اگه تو این برنامه کامپیوتر هست از چاپیش هم نگاه بکن تا روشن. ارث کردیم از سید راوندی به اسنادگیان محمد ابن از زطش محمد ابن محمد ابن اشععزه. ارث کردیم مرحوم سید فضل الله این سید از راوندی نشه، سید فضل الله راوندی. اللهش رحمت کنه سید مهندس. سید فضل الله راوندی از سید زیاودین فضل الله راوندی اول رضا به استدام از کارم سابقه بسیار سیدیم؟ این غیر از قطف راوندی معروفه ها نیشون سیده اونم سید میزیزم من فهمم. هر دو از راوندن در کتاب نوادر خودش این نوادر خودش اسم کتاب نوادر گذاشته دکن این نوادر به اینه کتاب عشاسیاته به اینه چیزی که هست ممکنه بعضی از قسمت‌هاش الان تو جعفریات ما نقل نشده یه توزیاتی هم صادقانه ازش کنیم فعلا دیگه جاش نیست و نسخه ای که ایشان داره نسخه یکی از آدمای شافعی مثلک معروف معروف چی امام رویانی عبدالعزیزه فلان رویانی امام شهید شیخ رویانی بسته. ایشون نسخه اون از اهل سنت گرفته و این نسخه بردااد آمده بواسطه رویانی به ایشان مونسد اسماعیل را ذکر کردن مونسد پسر اسماعیل ایشون پسر امام موسی جعفر این اسماعیل رئیس اسماعیلی نیست پسر پسر امام جعفر انا نوشته مونسد جعفر اشتباهه انا ابیه اسماعیل اگر اون کتاب یا یا همین جمال احادیث رو بعضی از نسخه جلدش نه حل شاید این اشتباهات اونجا اصلاح کرده باشه مزتونه مزتونه انا سند موسى بن اسماعيل جعفر این غلطه جعفر ان در اصل بوده جعفر الباقر که این که این, این یک نسخه جعفر که در اون جهفریات ما الان نیامده این قال رسول الله اربعتون لیس قیب. قیبتون قیبه البته ارز کردم متن مشهور بین اهل سنت سه تاست نه چهار تا برا میدونم خبر دارم یک سعده واحد یک کل نامده نه محمد نعشااس، اند موساد نیست ماید. محمد ابن. این عشااس ابوعلی کوچی ابن, ابن عشااسه. قال ابن جعفر. ابن, ابن. جعفر ابن محمد ابن علی همین گفتم اسماعیل افتاده قال حدثني ابي موسى بن جرهد تو این نسخه از موسى بن اسمان ابي موسى این غلطه این نسخه غلطه الان اگه احتمال میدم چون بعضی اصلا میخونن کتاب جامع احادیس نسخه تلرین چاپ کردن ادلاشو گرفتن اگه چاپ کردن نسخه اون تسیو نسخهش رو اینا با هم باطل روتون نه اینج غلطه موسى بن اسماين ان ابي اسماعی گفتن این اسماعی برادر از رزاء و ایشان شخصیتی هم بوده داره، بزرگی هم بوده وقتی اون یکی از اصحاب بزرگوار ما فوت میکنه، یونس که فوت میکنه، هزارها دستور اینه که ایشون در جنازش نماز بخوان، هزار جواب میزنن، هزار جواب میفهمن در جنازش همین اسماعیل نماز بخوان. این غیر از امام اسماعیلی هست، اون پسر امام صادقه، ایشون پسر امام موسی رجبه. و از که این شواهد نشون میده که ایشان حالا چه سری بوده همراه به اصطلاح اسماعیلی ها به مصر میره و در مصر بوده پسر ایشون هم که موساز ای این در زمان خلافت فاطمی هاست این جریان در زمان فاطمی هاست آیا ایشون نقش داشته ایشون خودش به اصطلاح موزه ما جزوه انقلابی بوده که در اصل در مصر برای تحییه بسا زمین سازی این انقلاب نمیدونه فقط من این مقدار میدونیم اصولت اینه که میاردن در اون زمان که بعد منتهی شد به حکومت اسماعیلی یا حکومت فاطمی ها احتوان در مسائل سیاسی و اجتماعی دست داشتن علایه حاله خود اسماعیل این نقطه رو ارز کردین و از اهل سنت هم به زبان دیگری بیان کردن ما هم به زبان دیگری این من بیان کردم یعنی میخواد. یکی از مشکلات این اسماعیل و این کتاب یاد. اینی که اسماعیل تا وقتی که در مدینه بود و شواهد الفه از که ما دقیقا سفر ایشان رو به مثل میدونیم فقط نجاشی میگه سکنه هو و گلده ها به مثل نمیدونیم چه سای دقیقا نفسه لکه شواهد به هر حال است که ایشان بالای سی سال عمرش بوده حالا چه سال بوده چه سال بوده بالای سی سال ایشون بعد از یعنی مرد بزرگی بوده اولاد داشته که ایشون رفته به مثل. ایشون تا در مدینه بودن این کتاب نقل کردن خیلی عجیبه تا در مدینه بودن این مجموعه ای روایت رو از پدرشون موسرد و جبه همین کتاب رو سکون نیست دیگه این نقل نکردن. کردن مست کرفتن نقلا خیلی نقطه،, نقطه ابحام اینه شون مست رفتن و ارز ما مست مشکل کلی داریم شیعه در مست نبوده. یعنی علما نبودن که بیا میگه کتاب درسته درستیز مقارنه بکنه مقابله بکنه چون از کلی ما کلن از هایی که ما الان در حدیث شیعه داریم از مثل دو تاست یکی همین عشسیاته یک کتاب های دعایمون اسلام و افرادی... کتاب های دیگه دعایم قاضی نعمان ما کلن نداریم از مثل کسی اونجا نبوده از شیعه کسی اده از شیعه رفتن احران شیعه غلاط اده راستن چون بس حکومت انقلابی مفاهیم نو سوسیالیست را اجرا در مصر حکومتشون نه به هم داشت باشه به هر حال اون چه که الان مشکل در این کتاب اینه اگر شدن شبیه این اشکال رو هم در کتاب ابن عدی آمد از اهل سنت حالا باخت نظر اهل سنت توی متون ما این مشکل داره که شخصی در مدینه باشه و بلافاصله در مدینه به خاطر عمره حج شیعه رفت و آمد داشتن یکی درم خوب در همون جا بودن که اهل چیز در مثل خود مرموم علی و از دیگران از خود خاندان رسالت و اسماعیل بیاد این کتاب رو از پدرش نقل بکنه که حدثانی عویان عوی این در مدینه نشده ایشون رفت در مص این کتاب در مص پخش کرده خیلی عجیبه این قسمتش ای کمی ابهام داره الا یال خدا رسول الله اربعتون ليس غیبت و غیبت الفاظ غلما اون بفسته که این دروغات هم بو ول امام الکذاب احسان تلمیع کرد ول اساتلامی اخبار حالی مرد از کذاب یعنی شد امامتش دروغینه ول و هونه به امهات نستجیب و بالا الفاظ کسانی که الفاظشش لو قبیله تانه و خارج از جماعت این توی یه دیگه نیست. کسی که خارج از جماعت عطا علی امتی از شاهر و علیه ها به سیفه هر کسی که بر علیه امت بیا مسلحانه بکنه این هم غیبت نذاره احتمال داره شاید چون در مصر خلافای فاطمی خواستن بگن مخالفین ما هر کسی باشه اینا فاسقن و غیبت ندارن شاید این اضافه کردن برای این زیلش نیست توی احادیث ما در احادیث اهل السلام این زیل الخارج و علا جماعت علی امتی هش شاهر و علیه ها به سیفه نیست. در کتاب اوالالله آلی که فوق الاده کتاب زعیفه حدیث 64 از این حدیث دیگه سندن اشبال سندشون فراغانه. لا غیبت لفاسقه نوفی فاسقه. این چرا داریم هم با این متنه؟ حدیث 65 در کتاب اختصاص قال رزا علیه السلام من القا جلبا بالحیات حلا و لحب این رو در اختصاص من اون شیخ، کتابی که منصوب به شیخ مفید مرسله نه کرده و در کتب اهل سنت ان رسول الله آمده احتمال میدم، احتمال میدم که اگر در کتاب،, کتاب اختصاص شاید از صحیفت و رضا نه کرده چون صحیفت رضا از کردن هن رضا ان ابی هن رسول الله ان علیه قال قال رسول الله و یه ده از احادیثش در کتب اهل سنت هم هست هم اونا اشکال دارن همین کتاب سعید وزاره هم ایده ای از اهل اشکال دار قبول نمیکنه انا الفضل بن حدیث شماره 66 مرحوم عیاشی فضل بن ابی قرره عن ابی عبدالله مرسله خود عیاشی هم فضل بن ابی قرره درک وا با کرده باشه فیرا تو ذهن هست فی قول الله تعالی لا یحب الله الجهر بسوء القول من ظلم ان خواهد آمد یکی از موارد استثناء غیبت همینه اینشالله اونجا خدا من توفیق بده هم راجع به قراءت این آیه مبارکه چون هم قراءت شده الا من ظلم و هم قراءت شده الا من ظلم و هم الا من ظلم اینشالله قراءت مختلف قراءتی که الان در کتاب قرآن هست و قراءت میشه الا من ظلم لا يحب الله الجهر به سوء من القول و اون منظلمه شاید بهتر بیاد چون اسم شخص برده نشو داره یه بولا جهر بسو الا من یعنی من تفسیر جاهر من یه جهر حالا بسو حالا انشاءالله تعالی بحثش رو در خود آیه مبارکه چون اون بحثای لطیفی داره بحثای تفسیریش انشاءالله اونجا عرض میکنم آله این روایت الان تقدیر صحتش که خواهد آمد این شو چند تا بحثی را بیان مصادر ظلم که ظلم مراد حلبه حق نیست ظلم گاهی در اموری که جنبه اخلاقی و ادبی هم داره صدق میکنه مثلا اگه کسی به شما احترام مناسبی نکرد این هم یک نوع ظلمه این تفسیر اینه من فی قومت کسی که گروهی رو دعوت بکنه فاساء ریافتهم یعنی خوب پذیرایی نکنه این امور اخلاقیست آدابیست به استولاد فهوم من ولم باید این طور بخونیم ظاهرم فلا جناح علیهم فی ما و فی این دیگه اینجا من ولم بخویم به سیقه معلوم بخویم. از کرده اونی که در قرآن موجوده به سیقه مجبوله نه من ولمه نه من ظلمه و اون تبیران در کتاب مجموع بیان حدیث 67 يحب الله يحب الله الجل ذیل آیه و روی ان ابي عبدالله که اشاره احتماله به همین تفسیر عیاشی باشه انه ریف نه انه نیست از مصادیقشه ینز به رجل فلا يح سن ریافته فلا جناح علی جناح احتمال در لفظ فارسی باشه گناه جناح معنی بار اون ظاهر عربی باشه اما جناح معنی گناه احتمال داره فارسی باشه فلا شنو عليه في ان يكره بسوء ما فعله بسوء ما به معنی اضافه بخونید به سوء ما فعل در کتاب حدیث شماره 68 ال عوال فقط علی رسول الله علیه و قال فاطمه بنت قیس اینه شاورت و فی خطا باها اینو توضیحش ارشد کردین دو خیلی نشان جوانی بوده شوهرش رو خلاقه داده او جریانی نرم میکنه که پیام وام گفت که از خونه شوهر برو بیرون یه خبر دیگه باشه مسکر مسکن حتی مسکن نداشتallah مطالعه مطلقه مطالعه با, بی... با این مطالعه سلاح حتی مسکن نداشت این خیلی سر صدا عجیز بود این مسکی خود زنی که دختره ای که فیروخ است بود و هر حال از هم زمان صحابه توی این حدیث فاطمه بنت غیس سر شروع شد من یه لعایش که نظر بود که این خودش بد زبان بوده پیغمبر گفته بیرون عمر هم قبول نکرد و این بی خود گفته نمیشه بک الهی از قول یک زن بگیریم که منو چی گفته یا تازه شروع که کتاب الله و سنت نبیه تو نبیان میشن کتاب الله ندارن که بکنی حالا عمر اشاره رو حالا به هر حال این یک روایت معروفی است از همون اهد صحابه و که این حدیث رو این فاطمه بنت قیس نقل کردن این محل سستاشو تا پی ما ده اده از اهل سنت معتقد بودن که درسته حدیثی صحیحه ولی زا طلاق باین با توش نفقه نداد تو ایام اده نفقه ندار مسکن این ها ندار اده هم که نه این حدیثش باطله فرق بین طلاق باین با و غیر باین با نداره ما این بحثه مفصلش رو در طلاق بفتیم از کردیم و اما در روایات ما در روایت ما قصه فاطمه و انتقیس نیامده لکن حکمش مصلغه از اصحاب اشتباه نشه این دو تا با هم دیگه فرق مگه این که ائمه نقل بکنن که این قصه فاطمه بنت درسته یه حرفی که گفته درسته این, این نیامده اصلا اسم فاطمه بنت تیز در روایات اهل بیت و این وقتی اصلاً کاری میشه یک دوات خیلی مشهوره توی روایات ما نمیاد اما حکمش میاد اینم این مثال دیگه خود روایت اصلا نیامده. کلمه و این قضیه او کلا ذک نشده. اما حکم هست که مطلقه بائن طلاق بائن نفقه نداره در ایام نداره و در اصحاب ما اجماعیه نه این که بعد هست اصلا مخالف نداره تو اهل سنت مخالف نداره نه زبان صالح هم نداره اما در اصحاب ما معارض نداره اون یکی از نکاتی که در این قصه فاطمه ای بنت قیس هست اینه که وقتی ادش تمام شد میاد پیش به برای که صحبت ازدواجینا بعد پیغمبر میگه و اما معاوی فرجلون سوالوکا که خیلی عجیب پدرش شیخ گرهش بوده احتمالا پدر پولی بشنی میذاره معاوی مرد مسکینیه لا مال له و اما ابو جم فلا یه و عصا ان آتقه عصا رو از دستش از شانش نمیذاره زنی زنش کتک میزنه استقراتیه البته این لا یه و عصا ان آتقه قصه مفصل دیگه هم آرشه داره که توش نهم میکنه محل کلامی که در اصطلاح عرب دو احتمال هسته که این اینکه مراد اینه که دائما سفر میره چون در حال سفر عصا برمی‌داشتن. کسی رو سفره، یک احتمالی که دسته به زن داره به حساب فارسی، یعنی زن چه کوجا میذاره. علای الهالد میگه این از این حدیث ضعیف در کتاب عوادی در کتاب‌های ما هم نیامده. در کتاب در اهل سنت هر جایی که نقل کرده و محل شاهد این است که بیورد کردن برای نصح مستشیر به عنوان مشورت اشکال نداره اینشانه چون تو خود مخاطبه هم آمده یکی از موارد استثنان بیورد هرکت میکنه این دوباره که درست نیست و باز در اموال لالی این حدیث معروفه قال نبیل هند بنت قطبه امرعت عبی صوفیان این خیلی معروفه در همون سال هشتم که به این تاریخ هم داره که پیغمبر هستان بیعت گرفته از زنها که در آیه مبارکه هست که حتی داره که هند سال لباسی دیگه عوض کرد که پیغمبر نشناسند و زن رئیس غورش بودیشون نشناسند لیکن پیغمبر از صحاتش شماختدش که هندی. و حتی حضوری هم کرد با پیغمبر چون گفت قلای اختل ما نه که بیعت که کردن که بچه هاشون نکشن گفت که ما کنیم کشیم بچه هامو بچه ها بزرگی شما میشوم میکشیم بچه هامو بهشان بگو ما که کشیم شما جایی میکنیم بچه هامو رو میکشیم ما که بچه ها خودمون نکشیم. ادامه فیلم کن نتیجه فهمنده. برعکس من کاملاً از صحبتهایی ای که اینجا این زنه که با پیغمبر میاد که ندیدشون کرد این بود. قالت دن نه این هر دو قطعه تاریخیه تابو تاریخ تباری دیگه خیلی معروفه. نه سفیان رجلان شهی لایو اتینی و ولدی ما یکفینی البته پدرش هم رئیس قرش اتره شیخ برسا قرش فقال ها خوزی لکی و کی ما یکفی که به معروف به طور متعارف اشکال ندارد اگه نمیده این هم خودش برسی ای دادوانه در کتاب وحد سنت همه آمده که نفقه زن که واجبه حتی اگه شوهر نداد زن میتونه برداره تمسا که به این حدیث کرده معروف این حدیث زیدش یاز به احادیث معروفه یکیش هم تمسا به زید سردش کردن در باب به اصطلاح یا حالا نصح مستشیره یا به عنوان منظله این نعوا و جلون شهی مرد است این چون غیبت کرده به این تمسا کردن که غیبت اشکالی نداره این راجع به دیگه چه قیبت تا اینجا شد حالا من چون ایشون بر تقدم و یعتیش به بحث صریح گذشته من اشاره‌ایام به این تقدمیت داشتم این نویسنده تقدم ریوایات سکونی باب هفت انتظار الصلاه در بحث صلاه باب فضا صدر باب شون چون خیلی قدیم زیر راه دوری داره می‌گه الین تو رجل المسلم من که است این رو به اصطلاح آکله میگن. از این روایت رو مرحوم شرف مفیلا در احاس صفحه 532 اینجا شما 52 الین و تو جسد المؤمن اونجان داشت دین رجال مومن مصرح. من آکلت فی لحمه هر دو درسته هم در جوف میشه هم قده در لحم میشه و قوله انتظار و سلاح عبادتون مالب یهدستی دارن سلاح نایهدست یا مالحدست بسا حدث آلال اختیار خب اینم ربایت سکونیست که بحثاش گذشته سندش ثابت نیست پیش ما بعد. در کتاب ذکرا از که مروم اول در ذکرا و محبت در کتاب معتبر گاهی از مسادر اولی حدیث نرمو کن که اینا هم ببینه به و بین رسیده اعتبار اونها محل اشکاله و من لزم جماعت المسلمین حرمت علیهم غیبت و, و ثبتت عدالت و خب این دبایت هم در باب قرمت غیبت میارن هم دربا به اصالت العداله میارن اینه اگر کسی دین آمد مسجد نماز کن تو نماز یه چون یه عاده ها. آثار عاده درش بار بکنه نمیخواد بعد احراز بکنی هر دوش مشکلی هر دو مطلب هر مطلب خیباتو درسته اون دومه سبایت ادارتو مشکلی و فیروات زی بر تحرم الجنه علا سلاسه علال مننا. مننا. و علال مقتاب و علا مدمن الخرم هرس کردم این دوارت از هم دو به قطعه اینکه ایشون قبلن هم قرده بود من بعدها هم کردم این قبلن ایشون رو بودود همه رو خوارن زید و تحرم اونجا جنده هواس هواسه من اونجا دارم نرشن ناس خیلی خودم بعدها اینه من تو مسند زید پیدا کردم آخر مسند زیر یه قسمت اینه که الهاقیه شبه دارم مال زید باشه اونجا داره اینه من سابقه نگفته بودم اونجا داره و روایت ابن تلهه پس دستیان از اخصائمو فی عبادت و امکان ما امن مالا فراشه مالا یقف هم در بحث قیبت و سون بحثی بود گذشت از کاریم روایت معتبر هم داریم که مفتره لیکن هم شده بر بل درجات و الله بنابر بر معروف قیبت مفتر نیست که زروع مفتر دونستن دیگه وادون بحثش میشه بعد در روایت بله ابو حمزه روایتی است که از ابو حمزه نقل شده که از علامات منافقینه به اخالقت المنافق اقتابکه این روایت البته معلوم نیست اصلا متنش اینجور باشه چون این روایت در کتاب بله در کتاب دیگری از صد ظاهره این و ان و ان المنافق لیکن صدوق داره به این او ابتاق این خوابه این مدنش روشن نیست که اینطور باشه که این دو اختلاف مدنه بله مرس علیه روایت سیف روایت مفصلی جز به آثار که ای کسی مؤمن رو مفتزح کرد خدا من او رو مفتزح میکنم روایت هبیه همزیرم که من عرض کردیم روایت ابن خالد این چند تا روایت از کردم انصافا سابقی خوندید کمترش بود همون جامعه از کردم بیشترش رو بعد آورده این سنیه ها هم دارن که رسول الله فرمود که بل... ل... اینجا یقضب نوشته یقضب درست نوشته زل بیت و لحم لحم خونه ای که گوشته گفتن مراد از گوشته این که بعضا گفتن گوش خورده بشه بعضا گفتن نه مراد خانه است که درشت به اسآل لحوم مؤمن، مؤمنین قیبت میشه یه حلی سابق گذاشت از تب و اگه آتون باشه کتاب تب و این هم یک روایت این هم البیت اللذی یک کلافی لحوم به ناس بلغیبه در سفحه 538 دقیق بکنه و فی مسمع همین ازنالله عزوجل الله عزوجل کلافی لحوم الناس با در روات عبدالعلا قال الله یقرز البيت اللحن قال کره و انما قال البيت اللدی قال البيت اللدی یختابون فیهن الناس. بله باز و فی مرسلت فقی ملغ نانده رسول الله قال و فی ادین در از دقت فهمونید متاسفانه در کتاب جمع احادیث یک نواخ عمل نکرده یکیشو در بال اورده بقیهش جای متفققه برده و خوب این پشت سره هم میابرد یعنی خوب بود برای این که این چیز بشه به اصطلاح پشت سر هم زکر میشه از روایت دیگه روایاتی که داریم روایت زوبجهین, زوبجهین و زولسان خودش در روایت متعددی هست که یکیشم که در به مقابل مؤمن مدهش میکنه پشتش بیبتش میکنه این روایت بعد حبس اوبرده روایت, روایت حبس خیلی ربطی نده میگه بین مؤمن مؤمن خاطر قیبت بله از انقطاع اسمت اسلامیش میشه بلکه بله روایت بعدی هم باز در حرمت قیبته روایت بعدی هم باز در حرمت قیبته که مرسله مکارم الاخلاقه بعد روایت بعدی هم تحریم و حجب المؤمن ملعون و ملعون من اختاب اخها اینا نازرن به اصل قیبت ما الان بیشتر دنبال اون احادیثی هستیم که غیر از غیبت چیز دیگری هم بگی روایت که بعدیش روایت که اینجا مرسل ضعیف نام کرده یا که ولغیبه فرنا ادامه کلاب نام از کلم کلاب و ناس هم ذکر شده لکن مشهورترش اینه بعد نمیشه که مثلا الان باب 1219ه های قبل از این بابه که قرار داده یه مدار از رواست بابه بله آورده و روایت بعدی ای یک روایت خیلی مفصلی هست که کسانی که به اصطلاح کان یع کل لحوم من ناس بلغیبه این چون روایتش خشنگی از فستندش خیلی روشن نیست در این کتاب جامع احادیست انصافا زیادتش خیلی مضمونش خشنگی هم هستند خیلی روشنگ ندارد در این کتاب رجال احادیث ابواب 133 این روایتی است که از حفص ابن قیاس منتهی میشه به نوفلی معروف هر هفت ابن قیاس را وارد بحثش بشم طول می‌کشه یا من اکتفا بکنم به خود داره بعد شماره 5 ابن جعفر ابن ابیه پس کلم حفص ابن قیاس کتابی داشته که 170 تا حدیث تقریبا توش بوده مجموعه نوشتارش از امام صادق بعد نیست سنی هست اما شواهد خوبیش هست توصیق هم شده قابل قبوله اما اینجا حدیثه مثل حدیث سکونیه انا ابي انا ابايه انا علي قال قال رسول الله بله اربعتون تون يوزون اهل نار. الا ما بهم من العذاب يسقون من الحميم که خداوند از اون آتش از اون آب همین به اثر از اون آتش هابی که آتشینه بشون میده یونادل به ویل و صبور به خودشون سلامز وای بر در مورد درختی متقول اهل النار و عذربند که خود اهل آتش باز از اینها ناراحت میشن بعد ایشون میگه که چهار طایفه هستند که اینطوری هستند رجل محللون علیه تابوت منجر یک تابوتی از آتش روش رجلان رجلون یجر و هم اَهُ هم. روده های خودش رو میکشه و رجلان یه سوود و فو وق قیهن و دمن از دهانش حساب خون و چرک میاد و رجلان ی کل و لحمه کوچ خودشون میخوره. اون چهارمی فریبول ل ت کان ی کل هم بلغیبه بلغیبه و ناز دامه به و یم شیر به ننیمه. این روات اینه سررا خیلی نیم نیست هم انصافن خیلی روات قشنگی از اونش به نیست. ال یا حالت یکیشم، یکی از روایاتی که هست که ایشون در اینجا آوردن یکی هم این بود درده و ارز کردیم این روایات بیشتر نازرن به مقام تمثل عمل و تجسم عمل ارز کردیم روایاتی که ما داریم بعضیش از مقام ملاکات شروع میشه بعضیش دون مقام حب و بغض مقام اراده و کراحت هم تا میاد به مقام تجسسم عمل روز غیاب از روایاتی دیگری که داریم در باب چیز امام فنم لاغی و تعلل المسل با فی جوف بیت و منظر به جماعت مسلمین وجبت غیبت تو. و قول و من لازم جماعت من حرمت علیه تو. این قبولش بسیار بسیار مشكله این که به مجرد اینکه در جماعت نماز نخونه دیگه این چه ای بحثای دیگه هم داره انشاءالله اگه فرصتی شود در جای خودش این فعلا قابل قبول نیست من هم. این روایت خوب به متون مختلف آمده که کسی که زواهر خوبی داره اینه یه را مقیبتو و بعد روایت مس... مسمع بوده که الان خوندیم این دادیه به باب 119 باب 120 این باب چون در خود کتاب مکاسب و من مرموم استادم بحث کردم این روایت بخونیم این روایت رو حدیث اولش اینه که مرموم کلینی او و فقی فقی از هفت ابن عمر معقل کرده الان شناسایی نشده ان ادتا من اصحاب ان برقی ان عبی ان جن که سنش الان خونه دیمون از ها. ان هفت ابن عمر نبی عبدالله قاله سوئل نبی صلی الله علیه و آله ما کفارت و اختیاب قاله تستغفر الله من قتب تهو کل ما زکر تهو یه وقت تموم شده من فقط اشاره بکنم دی بعد این که گناهه اصل اولی و شون کبائر احتیاج به توبه دارن اصل اولی این که درش توبه واجب باشه و توبه به استقفاله اینست که اصطفال لارا بیاید توبه این اولی این اصل اولی در تمام گناه لیکن گفته شده قیبت اینو حق و هم داره لذا دو سه تا دیگر گرمان کفاره ذکر شده یک بره از صاحبش استحلال بکنه اینا روزیکی که عدلش بررسید دو اون صاحب اون طرفی که به اصطلاح قیبت کرده او برای من استغفار بکنه مرحوم میشه انصاری هم تو آخر بحث قیوت در اللهم قبل لبنخطبنا لبنخطابنا پس یک استحلال دو استغفار اون شخص از این مجرم او برش استغفار دیگه این دو سه اینایی ای که اضافه گفته شده در کتوارقی و سه این که این کسی که فعل انجام داده یستغف ترول اون شخص منظور شد اون یکی اون استغفار برای این بکنه میگه الله خل بن خطابنی یکی این که ایشون میگه الله مخترم بده من تو او این شخصی که این از, الله اختب از این روایت مال اونه قال تصخره الله لمن اختطبته روشن شده از این سه ولیزا بحث این نکا یا این ستا عنوان ثابتن یا نه یکی استهلال یکی استغفار اون شخص یکی استغفار مجرم برای اون شخص این ستا این دل دلیل هست برای اینکه که استغفار این مجرم برای اون شخص بره واسه دیگه هم هست که بعد میکنیم و سالالله علا محمد و